سلام دوستای خوبم بعد از ها در خدمت آقای قهرمانی هستیم دوست خوب من و اینکه قرار قراره باز هم در حوزه خوردار نیک و سالم و سلامت با همدیگه گفتگو کنیم تو این مدتی که در واقع خلایی که افتاده بود در بین بحث ها و گفتگو ها ما چند تا مقاله توی اینترنت خوندیم و در واقع یه سری نظراتی که دوستان داده بودن حول محور گیاهخواری و گوشتخواری و اینکه به هر حال مزایا و معاصن این دو چی هستش و بالاخره ما باید گوشتخواری کنیم، گیاهخواری کنیم، هر دو خاری کنیم یا مباعث و نیشه ایل خواستیم که قول این موضوع صحبت کنیم با گفته گفتنی کنیم همینجا من یعنی هم از طرف خودم هم از طرف آقای قهرمانی از تمام مخاطب‌های این پادکستی که به گوششون میرسه خواهش اینو دارم که دوستانی که گوشت خارن و به هر حال فضای گوشتخوایی رو قنیتر و بهتر یا دقیقتر و خوراک سالمتر میدونن من واقعا قهرمانی خیلی خوشحال میشیم که بتونیم گفتگوهای سه نفره و چهار نفره داشته باشیم در این حوزه و اونها رو تبدیل به پادکست کنیم و ارائه بدیم که دوستان و مخاطبان خیلی دقیقتر و بهتر و همه جانبه در واقع ما که به موضوعی پردازیم دوستان استفاده کنند. بسیار دلی سلام جوابای قهرمانی خیلی خوش آمدید و ما خوشحالیم که باز شما رو داریم و قراره در حوزه خورداری نیک و خوردار سلامت و سالم و عملی گفتگو کنیم مثل همیشه در واقع سابتای تلاب و موضوعات دست شماست و منم اگه سوالی چیزی پیش بیاد در بین گفتگوهای شما بارد میشم و از حضورتون سوال میپرسن سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوانده های عزیز متشکرم از اینکه دوباره این فرصت رو ایجاد کردیم که ادامه بدیم پادکست رو و ادامه بدیم به صحبت ها رو و من بایزتون شروع میکنم با به کرده ما همون رو خوندیم من شروع میکنم تحلیل خودم رو بایزتون خدمتون عرض میکنم خیلی عالی من منتظرم و دوستانم خیلی خوشحال میشن که نظرات شما رو حول محور این مقالات بدونن و خودم هم نظراتی دارم که حتما ما بین صحبت های شما جسارتان عرض میکنم اگرم شما صلاح بدونید یه رفرنسی از این مقالات بدیم که دوستانی که مخاطب ما هستن بتونن استفاده بکنن یا اینکه من تو اون قسمتی که دارم پادکستو توضیح میدم لینک اون دو تا مقاله رو میگذارم که دوستان اون دو تا مقاله رو هم مراجعه کنن و مطالعه کنن. بعضی بله خیلی هم عالی. اتفاقا اینطوری فکر می‌کنم بهتر بتونیم پیش بریم که دوستانی که حالا دوستان موشکافان تر قضیه رو دنبال کنن خب اصل اون مقالات رو ببینن و صحبت‌های ما رو و حالا مقایسه کنن و ادامه. عالیه. در خدمت شما هستم. بسیار عالی. خدمت شما عرض شود که در یکی از این مقالات که به موضوع دلایل علمی گیاخواری در واقع ایراد گرفته بود دلایل علمی که گیاخاران برای گیاهخوار بودن انسان مطرح میکنند خب اول اینکه جالب بود که اون نویسنده اون مقاله با دید بازی نگاه کرده بود به قضیه هر چند طرفدار گیاهخواری نبود و احتمالاً گیاهخوار هم نیست اون آقا ولی همین که اشاره کرده بود به اینکه ما نیاز به تغذیه سالمتری داریم الان تغذیه‌ای که در دنیا متداول شده که مصرف بالای گوشت و مواد حیوانی رو داره این واقعاً به ضرر سلامتی ما و به ضرر محیط زیسته یعنی قسمت های زیادی از صحبتاش مشترک بود با ادعاهای گیاهخواران و حالا با دلاله که گیاخاران برای تغذیهشون مطرح میکنن اما ایشون مثلا در رابطه با اون دلایل فیزیولوژیک که مطرح میشه مثل طول بلند روده های انسان یا اینکه مواد حیوانی مضراتی که گیاهخواران براش عنوان کردن خب ایشون در اون مقاله اشاره کرده بود که مثلا حرف گیاهخواران به طور مطلق درست نیست و یکی از قوی‌ترین استدلال‌هایی که برای خودشون به کار برده بودن این بود که در طبیعت ما هیچ وقت تقریباً به صورت مستند نداشتیم که انسانهایی یعنی در طول تاریخ انسان‌هایی باشن که گیاهخار مطلق یا وگان باشن این حرف درسته یعنی ما تا جایی که دیدیم انسان ها همه چیز خاری کردن و حالا هرچند قبایلی مثل قبائل هنزا در پاکستان که هنوز هم هستن و 95 درصد خوراکشون تقریباً گیاهیه و بیشتر هم خام خارن اما به حالال باز مواد حیوانی مصرف میکنن یعنی اینطوری نیست که گیاهخوار مضق باشن حالا با وجود این که یکی از تو این ترین طول رو هم در بین قبائل و مختلف در کره زمین زمیندارن بنابراین خب به لازم رفتاری بخوایم بگیم شاید اصلا خود همین که انسان کنجکاف دوست داره همین چیز رو تست کنه همین این میتونه یه انگیزه قوی باشه برای اینکه انسان به مواد گیاهی چیزای دیگر رو هم امتحان کنه و حالا حداقل مثلا به عنوان یه تجربه جدید اونو شاید خوشش بیاد ادامه بده بخوردن اون ماده مثلا حتی میمون ها هم که حالا گفته میشه گیاه خار و میوه خارن ولی باز با این حال گاهی حشره میخورن گاهی مثلا یک تقمه موقع گیرشون بیاد میخورن اگه غذای گیاهی به مقدار کافی براشون گیر نیاد حتی ممکنه شکار هم بکنن اینها رفتارایی که در انسان ها هم دیده شده اما این که حالا یه سری دلال گیاه که واقعا شاید جای بحث داشته باشه شاید اصلا ما بتونیم سالها راجع به این صحبت کنیم و به نتیجه خاصی هم نرسیم به دلیل اینکه که خب شواهد تاریخی که بالاخره ما همه چیز رو در مورد تاریخ نمیدونیم و فقط اون چه باقی مونده رو ما میتونیم روش نظر بدیم ولی اینکه مثلا بگیم که به این دلیل که در طول تاریخ انسان‌های گیاخار مطلق نبودن و حالا ما گیاخوری مطلق رو به این دلیل بخوایم رد کنیم یا بخوایم بگیم که درست نیست خب این یه مقداری بحث جدیدی رو باز میکنه که اینکه آیا حالا به صرف اینکه در طول تاریخ انسان ها چنین رفتاری نداشتن همین گیاخوری مطلق آیا این دلیل کافی هست برای اینکه بگیم گیاخوری مطلق به zarar انسانه و یا اینکه خوب نیست برای انسان که خب فعلا که پژوهش‌های علمی و حالا این گیاه‌خواری که سالهای سال شیوهی رو تغییر دادن و های زیادی رو هم به دست آوردن به طوری که دیگه قابل نادیده گرفته شدن نیست یعنی خیلی از مخالفان گیاهخوری روز به روز دارن در مورد گیاهخوری نظرشون رو متعادل تر می‌کنن حالا یا گیاهخوری رو میپذیرن یا خودشون گیاهخوار میشن یا حداقل اگه همچون مخالف باشن نظرشون تعدیل پیدا کرده خیلی از مخالفین گیاهخوری و خیلی از متخصصان خب اینها نشون میده که حد حداقلش از یک تغذیه خاری یا گوشتخوری برای انسان ضرر بیشتری نخواهد داشت این گیاهخوری مطلق حالا باز بستگی داره به نوع عادات و نوع خوراکی‌هایی که دقیقا در رژیم غذایی هر فردی داره مصرف میشه البته مثلا یه اومدن این ایراد رو به گیاهخوری گرفتن که درسته که گیاهخاران ممکنه عمر طولانیتری هم داشته باشن و خیلی هم سالم زندگی کنن اما هنوز تاثیراتش بر نسل‌های بعدی اینا مشخص نیست و ممکنه نصف های بعدی گیاهخواران اگه همینطوری پیش بره به یک کمبوت دو چهار بشن یا در یک شرایطی که باز باید به حال اون یه فکری کرد و ازش پیشگیری کرد. خب همین این مبط مطرح هست اما، مسئله بیماری ها یک مسئله بود که حداقل حد در تاریخی که ما می‌شناسیم در تاریخ تمدن انسان همیشه مطرح بوده، یعنی بیماری‌ها همیشه قربانیان زیادی گرفته، همیشه دغدغه بوده برای انسان. و خب این با همین رژیم همه چیز خاری پیش رفته، این تمدن انسان. و به هر حال این نشون میده که رژیم همه چیز خاری اگر چیز کاملی بود، اگر از نظر سلامتی مشکلی نمی داشت برای انسان خب پس این همه بیماری و این همه مشکل رو ما نباید در طول تاریخ تجربه می کردیم حال این نگرش که بخوایم یه مقداری نقادانه به گیاخاری نگاه کنیم به نظر من چیز خوبیه ولی باعثی حواستمون باشه که یه وقت دلائل واهی نیاریم برای خودمون حالا چه اگه طرفتار گیاخاری هستیم و چه مخالف گیاخوری هستیم و یا در مورد اون چه شک داریم این رو بپذیریم که هنوز ما اطلاعات کاملی ازش نداریم یا اینکه شناخت کاملی از اون موضوع برای ما هنوز به وجود نیومده. همچنین یه چیزی هم که من فکر می‌کنم خیلی مهمه که حتما کسی که می‌خواد اظهار نظر بکنه راجب این سبک زندگی و بخواد حالا قضاوتی داشته باشه حتی لازمه که حداقل تجربه نسبتاً طولانی مدت داشته باشه از این تغییر سبک زندگی. به دلیل اینکه اطلاعات زد و نقیز خیلی زیاده و این نیازمند اینه که آدم شخصا خودش تجربه کنه یعنی بدون تجربه مستقیم به نظر من آدم نمیتونه نظر کاملی ارائه بده یا حداقل نظری که در حد شخصی بخواد کامل و قابل اتکا باشه یعنی من بگم من در حد شخص خودم این نظر رو میتونم با قاطعیت بگم زمانی این امکان پذیره که من خودم تجربه مستقیم داشته باشم با هر دو نوع سبک زندگی که حالا اکثر ماهایی که گیاهخوار شدیم چون قبلا همه چیز خار بودیم و بعداً گیاهخوار یا خام گیاهخوار شدیم معمولاً تجربه دیگه تجربه هر دو سبک زندگی رو داریم حالا گیاهخواری که از بد و تولد گیاهخوار باشند، تجربه همه چیز چیزخواری رو نداشته باشن ممکنه اصلا نمیدونم اصلا شاید درک متفاوتی از تغذیه و زندگی داشته باشن این موضوعی بود که من در رابطه با اون مقاله دیدم اما در یک مقاله دیگری بازاشاره کرده بود به اینکه مسئله گیاخواری مطلق و اینکه محصول حیوانی مصرف نشه خب اون تو اون مقاله اصلا اج اعتراض نکرده بود بابت اینکه این سبک زندگی خوبه یا بده یا اینکه مشکلی داره ولی این موضوع رو مطرح کرده بود یعنی در واقع بیشتر یه حالت مسلحت اندیشی داشت که میگفت اگر گیاهخواری مطلق در دنیا همه گیر بشه خب دیگه پرورش حیوانات برای یک کشاورز که در یک زمین ارگانیک همین حیوانات میتونن به صورت همزیستی با انسان به صورت همزیستی در اون اکولوژی اون منطقه پرورش داده بشن دیگه توجیه اقتصادی نداره برای کشاورزان چون کشاورزان حیوانات رو میارن داخل مزاره ارگانیک که هم از کود اونا استفاده کنن هم حالا اون بعضی از این حیوانات یه سری آفات رو میخورن و در کنارش محصولات حیوانی رو هم به فروش میرسونن و این توجیه اقتصادی داره براشون این موضوع البته بیاخواران باز دیدگاه مختلفی دارن نسبت به همزیستی با حیوانات و استفاده از حیوانات. من چند سال پیش کلیپ های دیده بودم که یه سری گیاخوار اصلا استفاده از کود حیوانی رو مثلا ممنوع میدونستن و مثلا میگفتن که ما وگان هستیم حالا چون گیاخوار متقه هستیم هیچ گونه محسود حیوانی به هیچ شکلی نباید مصرف بشه در صورتی که از نظر خود من غیر منطقیه به دلیل این که خب استفاده از بود حیوانات یه امر غیر طبیعی نیست و در طبیعت این اتفاق می افته دیگه حیوانات و گیاهان همه جا با هم هن یعنی در واقع به تکامل همدیگه هم کمک می و یه حالت زنجیروار بین اونها برقراره و حالا اینکه که به خاطر یک نگاه ایدئولوژیک ما بیایم انقدر افراتی بخواییم برخورد کنیم با قضیه من اصلا اصلا نمیدونم دونم چه فایده‌ای خواهد داشت این نوع نگاه ولی تا جایی که فلسفه گیاهخواری میگه یعنی فلسفه گیاهخواری به طور واضح و روشن داره به ما میگه که ما نباید به حیوانات هیچ آزاری برسونیم این یک اصله و حالا زندگی در کنار حیوانات و بهره بردن از حیوانات دیگه باستی حداقل شرایط رو داشته باشه که به حیوان آزاری نرسه خب در مزارع ارگانیک اگر بنابراین باشه که از محصول حیوانی مصرف نشه استفاده نشه که خب تقریبا مشکلی نداره یعنی چون خیلی از این حیواناتی هم که به دست انسان اهلی شدن مسئله ای که وجود داره اینه که اینا نمیتونن در طبیعت رها بشن و اگه مثلا در طبیعت وحشی رها بشن دوام نمیارن مگه اینکه چندین نسل دوباره اینها رو تربیت کنن برای بازگشت به طبیعت وحشی ولی فعلا در شرایطی که ما هستیم این حیوانات زیادی که اهلی شدن اینها برحال باعثی انسان خودش مسئولیتش به عهده بگیره و بنابراین مثلا ما در هندوستان میبینیم که خیلی از مناطق هندوستان کشتار ممنوعه کشتار گاو. اما با این حال خیلی ها که مزرعه ارگونیک دارن حیوانات رو هم نگه می دارن و حالا ممکنه از شیر رو اونها استفاده کنن اما حال کشتار ندارن و تا همینجاش می توانیم بگیم که اونها هم که برحال به نوعی گیاهخوار هستن حالا هرچند گیاهخوار مطلق نیستن اما قبلا این همزیستی رو تجربه کردن و بنابراین این که حالا ما اگه انسان ها گوشت رو بذارن کنار و کشتار رو بذارن کنار لزوماً دلیل برای نمیشه که دیگه از حیوانات نخواه نگهداری کنن و چیزی هم که هست اینه که برحال مسئله توجیه اقتصادی و اصلا مسئله سیستم اقتصادی یک مسئله چالش برانگیز بوده همیشه و خب این دیگه نباید بحانهی بشه برای این که این سبک زندگی و مزایای یک تغییر بزرگ رو ما می‌ویم نادیده بگیریم به خاطر مسلعد اندیشی در یک موضوع و این رو حالا میشه روش بحث کرد که چه راهکارهایی داره و شاید افرادی که متخصص هستن در امور اقتصادی در حالا مددهای کسب و کار بتونن راههایی پیدا کنن برای این موضوع هرچند که در کشاورزی ارگانیک فقط بخشی از کود طبیعی شامل کود حیوانی میشه به حال ما کودهای گیاهی داریم کمپوست داریم و اونها شاید بخش بزرگتری باشه در تقویت خاک و تقویت زمین شاید ما سهم داشته باشن و به هر حال این موضوعیه که البته کشاورزی ارگانیک کلاً یه چیزی بوده که همیشه گیاهخوارا ازش دفاع کردن و طرفدارش بودن و بنابراین حداقل خود گیاهخوارها ایده زیادشون استقبال خواهند کرد از این سیستم جدید کشاورزی و سیستمی که به توسعه پایدار کمک کنه و حالا در مورد تذینه‌های دیگه ای که دامپروری صنعتی روی فرو زمین وارد میکنه در اون مقاله هم اشاره شده بود که در واقع مشکل اصلی همین دامپروری صنعتیه و ما اگه این دام پروری صنعتی رو برداریم و به همون شیوه سنتی برگردیم دیگه این مشکلات معتزیسی به این شکل وجود نخواهد داشت که این درست هم هست ولی این دلیل نمیشه که گیاخوری بخواد با این موضوع زیر سوال بره حالا باز اگه مطلبی است که من جا انداختم در خدمتتون هستم میکنم مثل همیشه صحبتاتون کامل و جامعه هستش من چند تا نکتر رو یادداشت کردم یکی این که البته همه رو شما گفتید در واقع از تو صحبت ها شما یک جنبندی دارم میکنم برای اینکه دوستان در واقع خلاصه و نتیجه صحبت ها رو داشته باشن یکی این که ما بیایم تجربه کنیم یعنی به عنوان فردی که مختار هستیم اختیار داریم و میتونیم انتخاب کنیم تجربه کنیم گیاهخوای رو و تجربه سختی هم نیست و دیگه الان چیزی هستش که ما معمولا از هر خانواده‌ای که نگاه میکنه از هر چندتا خانواده یک نفر مثلن یا دو نفر ممکنه گیاهخوای کردن یا تمایل به گیاهخوای داشته باشن میتونیم از اون هم مشرورت بگیریم. اطلاعات هم وجود داره یه نگاه دیگه این که ما قبول کنیم که هیچ, چیزی، هیچ چیز کاملی وجود نداره و اگه بخوایم به داستان فلسفی هم نگاه کنیم اگر قرار بود که مثلاً چیز کاملی وجود داشته باشه که دیگه در واقع تکامل و رشد دیگه معنی نداشت شما فرض کنید که اگر قرار بشه یک دی ای به یک کمالی برسه دیگه بعد از اون نقطه کمال دیگه جایی نداره پس ما لزومن نمیگیم که فضای گیاه بهترین و درستترین فضای خوردار هستش ما خیلی، حتی من خیلی نگاهم به این فضای این شکلی انقدر متعصبانه نیست و صرفا داریم تحلیل میکنیم و جملات و موضوعات و تجربه ها و نظریه ها و این مسائل رو کنار می میچینیم تا به یک نتیجه درست تری برسیم برای روبه بهبود بودنه نکته بعد این که ما تا الان همونطور که شما گفتین مدل همه چیز خاری و این مدل زندگی که مثلا شاید از یک میلیون سال پیش تا الان داشتیم رو داریم نگاه میکنیم به هر حال مقدارش در تاریخ هست مقدارش نیست و باید فقط حواستمون به این باشه که در نقطه ای که الان قرار داریم حالا به صورت قراردادی اسمش رو گذاشتیم سال 2016 یا سال 1395 ما در این موقعیت فعلی که قرار داریم سلامت همونطوری که در مقاله اشاره شده بود سلامت 10 میلیارد انسانی که قرار زنده باشه بر روی این زمین زندگی کنه در خطره و سلامت زیست محیطی و زیست سازگاریمون مشکل داره و باید به این موضوع بپردازیم چرا اینکه اگر حواسمون به این موضوع نباشه طبق برآوردهای علمی نهایتا زندگی مفیدمون خواهد بود تا 50 سال آینده و بعد از 50 سال دیگه رو به نابودی میریم تا 100 سال هم کل در واقع سیاره نابود میشه ما برای اینکه بتونیم آینده ای داشته باشیم بتونیم فرزندامون آینده ای داشته باشن باید خردمندانتا و به سمت خردورزی پیش بریم خردورزی هم اینکه من به عنوان یک شخصی که میتونم انتخاب کنم زندگیم رو که خرردورانه پیش کنم میتونم انتخاب کنم که چیزی بخورم که برای سلامتی من خوب باشه چیزی رو بخرم که برای زندگی من مفید باشه و این خرردورزی تو هر حوزه کاربرد داره من تو حوزه سلامت هم, هم که بخوام به کار یه قسمتش برمود به خوراکم و باید نگاه کنم این خوراک من به اگر برای من یک نفر باشه ممکنه آره به هیچ کجایی هیچ موضوعی بر نخوره ولی وقتی قوت قالب میشه وقتی ما بزرگترین دامداری های صنعتیمون دارن بزرگترین آسیب های زیست محیط رو ایجاد میکنن ما باید حواسمون جمع باشه اوکی ما اگر در واقع پاندولمون به یک سمت گوشتخاری انقدر سنگینی داره میکنه و خطر زیست محیط ایجاد کرده ما باید این رو به تعادل بریم. حتی زمانی که به تعادل نرسه کل فرایند زیست محیطی که به خطر افتاده به تعادل نمیرسه آیا دچار بهبود و تصریع در بهبود و شرایط بهبودی رو، ایجاد نمیکنه. پس ما بهتره که با نگاه متعادل بیایم این رو هم به تعادل برسونیم. ما هیچ ما نمیگیم که همه انسان ها اگر بخوان خوب باشن باید گیاهخواری کنن. نه هیچ چیزی وجود نداره. ما اصلا در مقامی نیستیم که همچین حرفی بزنیم. اصلا کسی در مقامی نیست که همچین حرفی بزنیم اما ما برای اینکه سلامت تر زندگی بکنیم، برای اینکه بتونیم 5 نژ، 6 نژ، 7 نژ، ده نژ، 100 نژ بعد از خودمون رو هم داشته باشیم بتونیم برای این که همه ابعاد زندگیمون رو به نوعی به تعادلی برسونیم برای نوعی از زندگی مطلوب تر نه حتی زندگی پرفکت، نوعی از زندگی مطلوب تر نیاز هستش که این پاندول رو بیاریم حداقل رو نقطه مرکز قرار بدیم و اون تعادلی برقرار بشه که ما به جای 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال تا 500 سال بتونیم ادامه بدیم. و شما هم توی صحبتاتون گفتید ما اگر برگردیم به همون روش سنتی، یعنی دامداری های سنعتی با این روش های حالا پرورش دام و با موضوعات مثل هایی که ما نمیگیم لزوماً غلطه ولی هیچ اسناد و مداره که مستندی نیست براش، خیلی از دانشمندا و بزرگانی که توی این حوزه تحقیق می‌کنن تایید نمی‌کنن. دام دامپروری میکنن با مدل کشتارشون با تمام می اون روند اونو باید متعادل بشه ما برگریم به حالت سنتی و تو حالت سنتیش هم من بعید میدونم که برای یک کشاورز سنتی که تو کانادا یا تو استرالیا یا جای دیگه ای داره یه کاری انجام میده تو ایران خودمون تو روستا خودمون یه نفر اگه مثلا 50 تا 6 تا 100 تا گوسفند داره نرم 20 تا گاف داره و داره حرکتی میکنه اونها کماکان مشتریشون هست چون ما اگه به جامعه کلیمون نگاه کنیم شاید من دقیقاً نمیدونم ولی شاید از کل جامعه ای که افتونیم میلیارد نزدیک به 8 میلیارد آدمی که وجود داره شاید 10 درصدش فقط گیاهخوار باشه و 10 درصد خار و 90 درصد گوشتخوار این نشانه بارز عدم تعادله و این رو ما وقتی بررسی میکنیم به واسطه مدل صنعتی شده اقتصادمون مدل صنعتی شده فراینده حالا کشاورزی و غیر زالک هستش در واقع اینجا شاید یه کوچولو نگاه کوتاهی باشه که من بگم اگر من الان میام گیاخاری میکنم و گیاخاری رو ترویج میدم در حقیقت دارم ضربه میزنم به اون کشاورز یا اون کسی که بلازه اقتصادی داره مایحتاجش رو و موضوعاتش رو از فضای دامداری و دامپروری میگذرونم بعیده یه همشه اتفاق بیخته که البته که حتما برای اون فرد صنعتی کار شاید مثلا در 15 سال آینده مجموع بشه گافداریش رو بکنه و به هر حال ما باید مسلحت های کلی رو و کل اندیشی رو بیشتر در نظر بگیریم چرا که فرض بگیریم که بحث گرمایش زمین کاملا توسط خود زمینی ها و زیست محیطی اتفاق افتاده باشه و ربطی به موقعیت منظومه شمسی در کهکشان رای شیری نداشته باشه ما تو این موضوع شکست خوردیم و نتونستیم به تعادل برستیم چون اینکه نتایج داره به ما نشون میده که ما بد مواجه شدیم با این موضوع و اگر حواسمون رو جمع نکنیم دوچاره مشکلات شدیدتر و حادتری میشیم کل صحبت های منم کل مهره همین موضوعات بود هرچند که شما هم به همین موضوعات با نگاه دیگری اشاره کردیم اگر فکر میکنید که صحبتی هست یا از بین صحبت های من چیزی هست کهش باعث شما بهش اشاره کنید من ممنون میشم بعد متشکرم از گذیات تکمیل کننده شما واقعا دیگه همه نکات مهم رو پوشش دادین و من هم با شما موافقم هم با همه ای صحبت هاتون و به نظر من اگه حالا یه سری مسته تندیشی های اقتصادی رو هم قرار در نظر گرفته بشه خب میدونیم که یک شبه این تغییر حاسد نمیشه که حالا فرسون امشب بخواب این فرداس و بودنشیم همه دنیا گیاه کار شده باشند این تغییر تدریجی باعث میشه که فرصتی هم داده بشه به حالا زیرساخت اقتصادی یا کسب و کارها که اونها هم به تدریج بتونن خودشون رو سازگار کنن با سبک زندگی جدید و تغییراتی که مردم دنیا میخوان در زندگیشون با وجود بیارن و در نهایت من فکر میکنم این موضوع هر چقدر حالا ممکنه ساده نباشه حل کردنش اما قابل حل خواهد بود چیزی که فعلا برای همه موجودات زنده زمین تهدید محسوب میشه یک تهدید جدی و فوریتی اینه که مشکلات محیط زیستی و نابودی جنگل ها نابودی اکوسیستم این چیزی است که باید در اولویت باشه برای هر نوع برنامه ریزی و برای هر تصمیم گیری درستی حالا مسائل حاشیه‌ای و های بعدی که باز هم دغدغه انسان خواهد بود اونها رو میشه همزمان و به موازات این تغییر بهشون پرداخت و راهکار پیدا کرد و یه کاری کنیم که هم محیط زیست سالم بمونه و حفظ بشه و هم سلامتی جسم خودمون تامین بشه و همین که از نظر اقتصادی و از نظر ادالت اجتماعی هم بتونیم موفق در کنار هم زندگی کنیم. خیلی ممنونم با... از اینکه این, این وقت به ما دادید، باز هم در کنار ما بودید آقای قهرمانی. ما همیشه قدردان حضور شما هستیم و امیدواریم که خارج از همه میدونم من با نگاه شما کاملا آشنا هستم و توی این مدتی که با هم دیگه آشنا شدیم و با هم دیگه به نوعی رفاقت کردیم و دوستی کردیم میدونم که شما شخصا انسان متعصبی نیستید و اصلا با این روی کرد توی این حوزه فعالیت نکردید و منم خیلی خوشحالم که شما کسی هستیم که دارید توی کانال و اتول فضای ما دارید به این موضوع میپردازید و خیلی خوشحالم که موضوع رو خیلی متعادل و منطقی و خرد و داریم پیش میبریم تا در واقع خدمت کنیم چون ما نیتمون خدمت کردن به سلامت جامعه است و به واسطه اون نگاه کلینگری که داریم در حوزه حالا زیست محیط در حوزه خیلی از موضوعات میدونم که خوب داریم پیش میریم و امیدوارم که مخاطبامونو هم از ما راضی باشن و تونسته باشیم که آنچه که اونها قرار بوده بشنون و آنچه که قرار بوده که بهش فکر کنن در موردش به ای برسن با صحبت ها و گفتگوهای ما تسهیل بشه این مسیر براشون و به نتیجه گیری دقیق تر و درست تری از کل مبحث خوردن و خوردار داشتن و غذای خوب و سالم برسن باز هم خیلی ممنون متشکرم از شما و خدا نه باشه باش مچکر